گرامیان درود بر شما فایل آوایی هشتم از کتاب برهان ادیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نونفخر رو با هم آغاز میکنید صفحه هشتاد عنوان هفته هفتم ادامه برهان علیت اثبات نامحدود بودن واجب الوجود ناباور هفته گذشته را چگونه گذراندی؟ آیا دلیلی درست و حسابی برای نامحدود بودن واجب الوجود پیدا کردی؟ مامن راستش هر در براهین فلاسفه مسلمان گشتم، چیزی پیدا نکردم که تو نتوانی از آن ایراد بگیری. فلاسفه مسلمان یا پیشفرزهای به قول تو سلیقه‌ای و, و معیارهای صرفاً ذهنی را در برهان‌های خود آوردند. مانند آنچه در مورد تشکیک وجود و یا نقص در وجود اشیاء گفتم و یا اینکه از از پیشفرزهای اعتقادی خود استفاده کردند. مثلا گفتند که نقص و محدودیت با یکتایی و توحید سازگار نیست چرا که خدای ناقص همانند موجودی از موجودات و مخلوقات دیگر خواهد بود و اینگونه هیچ تفاوتی بین او که آفریدگار بی و آفریده نخواهد بود. همینطور که میبینی بیمانند بودن خدا از هر جهت را که یک باور دینی است به عنوان پیش فرض در حالی که این بیمانندی از هر جهت را باید از طریق برهان ثابت میکردند. ما ثابت کردیم که واجب الوجود نباید هیچ خصلتی که پائس شود او یک پدیده و نیازمند علت باشد داشته باشد اما هنوز موفق نشده‌ایم ثابت کنیم که محدودیت فقط منحصر به پدیده هاست و واجب الوجود نمیتواند محدود باشد زمانمندی خصلتی است که محدود به پدیده هاست و علت اول نباید زمانمند باشد و یا تغییر کند ما این را ثابت کردیم ولی این را که نفس محدود بودن هم خصلتی است مختص پدیده‌ها هنوز ثابت نکرده‌ایم اما در بعضی از ها مانند آنها که اشاره کردم از قبل فرض گرفته شده است که چون خدا پدیده یا مخلوق نیست پس نباید از هیچ نظر شبیه مخلوقات باشد. از جمله از نظر محدود بودن. آورندگان این نوع استدلال ها این جهت خاص از عدم تشابه بین خالق و مخلوق را از اعتقادات دینیشان آوردن. نه از طریق استدلال فلسفی و منطقی. پس تو مسلما اینها را نخواهی پذیرو. ناباور پس نتیجه چه می شود؟ آیا می توان گفت که واجب الوجود ممکن است محدود باشد و ممکن هم هست محدود نباشد؟ آیا می توان گفت که اولین هستی عالم و علت العلل جهان هم شیعی بوده از شبیه بقیه اشیاء فقط این شی یک پدیده نبوده بلکه از ازل وجود داشته بدون اینکه چیز دیگری آن را خلق کرده باشد. مومنم، هفته گذشته خیلی به محدود بودن یا محدود نبودن واجب الوجود فکر کردم. مسئله محدود بودن به معنی ناقص بودن را به دلایلی که گفتی کنار گذاشتم. به نظرم رسید که اگر فقط برهانی برای محدود نبودن واجب الوجود به معنای نداشتن حدود و کیفیات مشخص و معین دست و پا کنم، هم نشان دادم که واجب الوجود دارای هیچ صفت عدد پذیر و کیفیت پذیری نیست و هم به طبع آن نشان دادم که نقصی در او راه ندارد. به این ترتیب با یک دیر دو نشان میزنم. ناباور و نتیجه چه بود؟ مؤمن فکر میکنم استدلال خودم را برای اثبات نامحدود بودن واجب الوجود پیدا کردم. ناباور یعنی یک استدلال جدید فراهم کرده که در بین فلاسفه مسلمان بی‌سابقه است مامن، تاجایی که خودم مطالعه کردم بله این یک استدلال جدید است پاورقی. استدلال پیشرو را در منابع فلسفی ندیدم لذا با توجه به ضعفی که در ادله فلاسفه مسلمان در اثبات نامحدود بودن واجب وجود یافتم برای تکمیل پس این استدلال را به نفع بیهد بودن واجب الوجود از زبان مؤمن ترح می کنم. ادامه مطلب ناباور می شنبم؟ ما پیشتر از علت تامه صحبت کردیم. خصوصیت علت تامه این است که وقتی به وجود می آید معلولش بلا فاصله وجود خواهد داشت. علت تامه هستی که آن را علت به وجود آمدن معلول می دانیم. فرض کن من این فنجان چای را در ارتفاع یک متری زمین نگه دارم مختصات مکانی آن حدودی است که مکان آن را تعیین می‌کند مختصات مکانی ذرات بنیادی فنجان چای یعنی مختصات مکانی الکترون‌ها و کوارک‌های سازنده پروتون‌ها و نوترون‌ها و نیز میزان نیروهایی که این ذرات به با هم وارد می‌کنند و جرمی که دارند و همه چیزهای از این قبیل خصوصیاتی است که جنس فنجان و شکنندگی فنجان از این خصوصیات ایجاد شده است نیروی جاذبه زمین و میزان آن نیز مقدار مشخص و محدود خودش را دارد جرم کره زمین و جرم فنجان تعیین میکند که میزان نیروی وارد شده از جاذبه زمین به این فنجان چقدر باشد سختی جنس کف مکانی که در آن هستیم نیز محصول مختصات و خصوصیاتی است که ذرات بنیادین مواد تشکیل دهنده آن نسبت به هم دارند مختصات انگشت من نیز به این فنجان و نیرویی که با انگشتانم به آن وارد میکنم باعث شده این فنجان علارغم وجود نیروی جاذبه زمین همچنان در دست من باقی بماند و به زمین نیفتد. با تغییر مختصات مکانی انگشتان من و کاهش نیروی وارد شده از انگشتان من بر فنجان مختصات جدیدی ایجاد می شود و حدود و کمیات قبلی قدری به هم می خورد. حال به نظر می آید که علت تامه سقوط فنجان فراهم شده است. در واقع، علت تامه سقوط فنجان مجموعی از کمیات و کیفیات است و وقتی به وجود آید بدون هیچ درنگی معلول آن که همانا شروع سقوط فنجان است، پدید می آید. هدیده پی, پی یکی پس از دیگری یکدیگر را به وجود می آورند. تا نهایتاً به پدیده برخورد فنجان به سطح زمین سخت این مکان می رسید. از اینجا به بعد کمیات و کیفیات پدیده که پیشتر برشمردم منجر به شکستن این فنجان می شود. اگر اعداد مربوط به مختصاتی که اتمها و ذرات زیر اتمی و نیروهای بنیادین بین ذرات فنجان داشتند چیزی غیر از این بود که هست ممکن بود که جنس فنجان دیگر شکننده نبود و محصول نهایی این رویدادهای پیاپی شکستن فنجان نبود اگر مختصات و کمیات مربوط به ذرات کف زمین غیر از این بود که هست شاید دیگر کف اینجا سخت نمیبود و فنجان نمیشکست اگر جرم کره زمین متفاوت بود، لاجرم نیرویی که به فنجان وارد می‌شد متفاوت بود و فنجان با سرعتی متفاوت به زمین سقوط می‌کرد و نتیجه چیز دیگری می‌شد. می‌بینی که هستی فنجان، زمین و کلاً هستی جهان در لحظه‌ای که من فنجان را در ارتفاع مشخصی از زمین نگه داشتم دارای مجموعه‌ای از مختصات و خصوصیات مشخص است. که در مورد جهان مادی می توانیم به هر کدام از این مشخصات یک عدد نسبت دهیم اینکه این می توانیم به اینها عددی نسبت دهیم حاکی از یک صفت خاص در مورد کلیت جهان ما و نیز جزئیات جهان ماست ما آن صفت محدودیت یا داشتن حدود است محدود بودن به اعداد و کیفیات مشخص این اعداد هر باشند دارای حدودی هستند نه بیشتر از آن هستند و نه کمتر از آن جرم اطوم ها و جرم ذرات زیر اتمی فنجان هر کدام یک عدد دارند کمتر یا بیشتر بودن این اعداد منجر به خواص متفاوتی در اجسام می‌شود بار الکتریکی الکترون‌ها و پروتون‌ها هر کدام عدد مشخصی دارد. و عدد مشخص یعنی حد مشخص بیشتر یا کمتر بودن این اعداد و یا به عبارتی به هم ریختن حدود هستی الکترون و یا پروتون منجر به این می شود که اصلا با هستی متفاوت و با خواصی متفاوت روبرو شویم هستی با حدود جدید و یا کیفیت جدید علت مقلولی جدید خواهد شد یعنی معلول قبلی که آنها سقوط و شکستن فنجان بود روی نخواهد داد بلکه معلولی دیگر روی خواهد داد و های دیگر پدید خواهند آمد در اینجا تأکید من بر روی این مسئله است که حدود و مختصات یک هستی را نمیتوان از آن گرفت مگر اینکه منجر به ایجاد هستی دیگری شد پاورقی در بین فلاسفه قدیمی کمتر چنین رویکردی به تعریف هستی وجود دارد. نگاه غالب این بود که هستی جوهر و عرض دارد و با تغییر عرض همان که ما از آن به حدود یاد می جوهر تغییر نمی کنند. این رویکرد با دریافتهای جدید از هستی و ماده همخانی نیست و قابل کاربرد در فلسفه نوین هستی شناسی نمی باشد. که با نگاه نوین به هستی ترمیمهایی را در تبیین برهان علیت انجام دهم و آن را به بروز کنم که یک فیزیکدان به آن خورده نگیرد البته این ترمیم‌ها در نتیجه نهایی تأثیری ندارد و برهان علیت چه با نگاه قدیمی به ماده به هستی و چه با نگاه جدید نتایج یکسانی دارد ادامه مطلب حدود و مختصات یک هستی بخشی از آن هستی نیستند بلکه خود آن هستی هستند. هر یک از اینها را که کمی تغییر دهیم با هستی دیگری مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر بین علت تامه و معلول هیچ فاصله اینه میتواند باشد. اگر علت تامه وجود داشته باشد ولی معلولش به وجود نیامده باشد این نشان می‌دهد که علت تامه که ما تصور می‌کردیم علت تامه است در واقع علت تامه نبوده و داوری ما درباره اینکه آن علت تامه بوده اشتباه بوده است. ناباور چرا بین علت تامه و معلول هیچ فاصله ای نمی‌تواند باشد؟ مؤمن از لحاظ حصر عقلی اگر علت تامه وجود داشته باشد و بلا فاصله معلول به وجود نیاید، فقط دو حالت به ذهن می رسد. اولین علت تامه وجود داشته باشد و در کنارش چیز دیگری هم باشد که مانع شود آن علت تامه معلولش را ایجاد کند وقتی می چیز دیگر یعنی از یک هستی صحبت می کنید. یعنی وجود یک چیز یا یک هستی دیگر ممکن است مانع از عمل کرده علت تامه شود. در اینجا واضحه هست که وجود علت تامه در کنار آن چیز دیگر یک پیام مهم برای ما دارد و آن این است که اصلا با علت تامه مواجه نبوده آنچه با آن مواجه بوده این هنوز علت تامه معلول مورد نظر ما نبوده بلکه پس از رفع آن چیز که مانع بوده تازه علت تامه واقعی به وجود می تازه اینجاست که می توانیم بگوییم که علت تامه وجود دارد و دیگر معلول نمیتواند به وجود نیاید. حالت دوم حسر عقلی این است که علت تامه باشد و عدم و نیستی جلوی عمل آن را بگیرد. با توضیحاتی که پیشتر درباره عدم و نیستی داشتیم واضح است که این حالت غیر ممکن است. بنابراین هر دو حالتی که گفتیم به لحاظ حسر اقلی ممکن است به ذهن خطور کند تا جلوی علت تامه را بگیرد باطل و غیر ممکن هستند پس وقتی علت تامه وجود داشته باشد، ناچار معلولش به وجود می آید. نابابر. همه اینها که گفتی چه ارتباطی به این دارد که علت اول یا واجب الوجود نتواند محدودیت داشته باشد. مؤمن یک هستی که دارای حدود و مختصات باشد، اگر علت تامه یک معلول باشد، نمی تواند جلوی عمل خودش را بگیرد. و معلول را به وجود نیاورد گفتیم که اگر خصوصیات و محدودیت‌ها و مختصات یک هستی را تغییر دهیم دیگر با آن هستی روبرو نیستیم بلکه با هستی جدید و متفاوتی روبرو می‌شویم بنابراین علت اول اگر حدودی داشته باشد این حدود مشخص می‌کند که آن علت اول تنها یک خصوصیت مشخص و معین داشته باشد و داشتن یک خصوصیت مشخص و معین باعث می شود که آن علت اول علت تامه تنها و تنها یک پدیده باشد به همین ترتیب اگر علت اول خصوصیت متفاوتی می داشت می توانست تنها و تنها علت تامه ای دیگر باشد از محدود بودن علت اول است که تعیین می کند بسته به اینکه محدودیت هایش محدود به کدام حدود باشند چه معلولی را به وجود آورند. نابابر خب اشکالش چیست؟ وجود یک علت اول را اثبات کرد. این علت اول نمی تواند زمانمند و قابل تغییر باشد. تا اینجا مشکلی نیست. اما این که بگوییم این علت اول نمیتواند دارای حدود باشد. چون اگر دارای حدود باشد تنها یک پدیده و معلول مشخص از آن به وجود می آید که دلیل برای این نیست نتواند محدود باشد. خب محدود باشد و فقط بتواند یک معلول به وجود آورد. این که ایرادی ندارد. ظاهراً تو برای اینکه که خدایت بتواند با اختیار دست به خلقت هر چیزی که می بزند ناچاری او را نامحدود بدانی تو اول به وجود خدا اعتقاد داری و سپس برای اینکه مبادا با محدود بودنش امکان خلقتهای مختلف و متعدد و گوناگون از او گرفته شود ناچار شدی که قبول کنی او نمیتواند محدود باشد به این صورت او میتواند چه بخواهد خلق کند علت اول اگر محدود باشد هستیش میتواند علت تامه تنها و تنها یک معلول باشد. حال برای فرار از چنین نتیجه‌ای محدودیت را از او سلب می‌کند. چه ایرادی دارد که آن علت اول یک هستی دارای محدودیت مثل بقیه پدیده ها باشد و همچنان علت اول باشد و بقیه هستی از آن ایجاد شد. اصلا تو بارها به این علت اول و باجب الوجود با زمیر او اشاره کردی. تو از اول قصد داشتی به یک موجود دارای شخصیت و اراده و اختیار برسی و به شکلی ناخداگاه این پیشفرز را در ذهنت داشتی. به نظر من تا وقتی که ثابت نکرده ای علت اول شخصیت و اراده دارد نباید از زمیری به جز زمیر آن برایش استفاده کنید. مومن در مورد زمیر اشاره حق با توست اما زیادی وارد مسائل حاشیه ای تو اجازه ندادی که من حرفم را تمام کنم؟ نابابر ببخشید نمی حرفت تمام نشده ادامه بده؟ مومن همانطور که گفتم وقتی که علت تامه وجود داشته باشد معلول بلا فاصله به وجود می آید. از این مقدمه می شود نتیجه گرفت. وقتی یک پدیده وجود دارد می توان گفت که علت تامهش وجود داشته است. حال که وجود داشتن علت تامه و معلول اینقدر به هم گره خورده است، می شود گفت که هرگاه یک پدیده یا معلول وجود ندارد، نشانه آن است که علت تامش ازلی نبوده است. ناباور با کنجکاوی و علاقه به جلو خم شد و گفت، لطفاً بیشتر توضیح بده. مومن ببین، اگر من این فنجان را رها کنم، حدود یک ثانیه بعد به زمین می‌خورد و می شکنم. البته بین رها کردن فنجان و شکستن آن، پدیده های بیشمار زیادی اتفاق می افتد. یعنی هر لحظه از سقوط این فنجان را می توان یک پدیده حساب کرد و فاصله رها کردن این فنجان تا شکستن آن را به لحظات بیشماری تقسیم کرد. ناباور. بله مثل این است که از این واقع فیلم بگیریم و سپس هر فریم از فیلم را یک پدیده جداگانه در نظر بگیریم. ممم بسیار خوب. حالا یک سوال می‌پرسم. آیا ممکن بود همین اکنون فنجان شکسته روی زمین وجود می‌داشت؟ پاسخ این است که ممکن بود اگر و تنها اگر علت تامه این پدیده پیش از این وجود می داشت. یعنی همانطور که تنها دلیل به وجود آمدن یک معلول وجود علت تامه آن است پس تنها دلیل نبودن یک معلول نیز این است که علت تاممعش نبوده است. وجود نداشتن یک پدیده تنها به این دلیل است که علتش مسبوق به عدم است. ورز کن تو قرار است سال دیگر به یک سفر بروی، و در شهر نیشابور باشید. آیا این پدیده ممکن بود همین الان وجود داشته باشد؟ یعنی آیا می توانست ناباوری که یک سال دیگر از عمرش گذشته و در نیشابور حضور دارد همین الان وجود داشته باشد؟ این پدیده هنوز وجود ندارد اما می توانست وجود داشته باشد اگر و تنها اگر علت تامه آن وجود می داشت. این پدیده ناباور یک سال پیرتر و حاضر در نیشابور همین اکنون وجود ندارد. تنها به این دلیل که عللی که باید آن را به وجود بیاورند هنوز به وجود نیامده اند. وقتی تمام این علل به وجود بیاید، معلول آن نیز به وجود خواهد آمد و ناباور یک سال پیرتر حاضر در نیشابور وجود خواهد داشت همین حضور تو الان در اینجا با این خصوصیات و سن و سالی که داری و معلومات و طرز تفکری که داری همگی در جمع می تواند یک پدیده حساب شود که علت وجودیش تنها و تنها این است که پدیده و یا عللی که باید این را و این لحظه را به وجود می آوردند وجود داشتند ناباور حالا این را چطور به محدود نبودن علت العلل پیوند می‌دهی مومن، لحظه‌ای را تصور کن که اولین پدیده عالم وجود داشته است اما هنوز پدیده دوم را به وجود نیاورده است این فرض را هم داریم که پدیده لحظه دوم هستی معلول پدیده لحظه اول هستی بود است همه چیز را در این لحظه متوقف کردم ناباور همه چیز را در حالی که پدیده لحظه اول هستی وجود دارد اما پدیده لحظه دوم هستی هنوز به وجود نیامده متوقف کردم ادامه بده مومن حال میشود این سوال را درباره این لحظه متوقف شده پرسید آیا ممکن بود به جای این پدیده پدیده لحظه دوم هستی وجود می داشت؟ به عبارتی دیگر می شود پرسید آیا مانعی برای وجود پدیده لحظه دوم هستی وجود داشته است که آن پدیده هنوز وجود ندارد؟ پاسخ این است که هیچ مانعی برای به وجود آمدن پدیده لحظه دوم هستی وجود نداشته است و پدیده لحظه دوم هستی میتوانست وجود داشته باشد اگر و تنها اگر پدیده لحظه اول که یگان علت تام آن است وجود می‌داشت اکنون به این نتیجه می‌رسیم که پدیده لحظه اول هستی مسبوق به عدم بوده است چرا که اگر تنها و تنها علت به وجود آمدن پدیده لحظه دوم هستی، وجود پدیده لحظه اول هستی بوده باشد و در عین حال پدیده لحظه اول هستی ازلی بوده باشد، بدین معنی است که از ازل علت پدیده لحظه دوم هستی وجود داشته به عبارت دیگر لحظه دوم هستی نیز می‌بایست از ازل وجود میداشت چرا که هیچگاه هستی خالی از علت تامه لحظه دوم نبوده ولاجرم وجود نداشتن لحظه دوم هستی در هیچ بره ای ممکن نبوده است ناباور کمی صبر کن باید به حرفهایت فکر کنم ناباور چند دقیقه فکر کرد سپس گفت اجازه بده چند دقیقه بیرون بروم و سرم هوایی بخورد و برگردم. لطفا همینجا بنشین میشین میخواهم کمی تنها فکر کنم. مومن. منتظرت مینشیدم. ناباور بیرون رفت و پس از چند دقیقه برگشت و گفت راستش اول خواستم با کردن مسئله گذر زمان و معنای زمان از دلایل تو ایراد بگیرم. به هر حال از من خواسته بودی که در خیال خود زمان را در لحظه اول هستی متوقف کنم. اما دیدم اگر زمان را هم کنار بگذاریم باز هم امکان دارد این سوال را مطرح کنیم که چرا فلان پدیده و یا فلان رویداد وجود ندارد؟ دیدم باز هم جواب همان خواهد بود که گفتیم یعنی وجود ندارد چون علت تاماش نبوده وجود می داشت اگر علت تامهش آن را به وجود آورده بود علت تامش آن را به وجود آورده بود اگر و تنها اگر آن علت تامه وجود می داشت. من همه چیز را در حالی که فقط لحظه اول هستی وجود داشت متوقف کردم و از خود پرسیدم تنها واقعیت موجود چیست؟ سپس به خود جواب دادم وجود لحظه اول هستی و بس. هست. آنگاه از خود پرسیدم آیا ممکن بود وجود لحظه دوم هستی واقعیت می داشت؟ و به خود پاسخ دادم بله اگر وتنها اگر علت تامه لحظه دومه دو هستی آن را به وجود آورده بود باز از خود پرسیدم پس چرا علت تامه لحظه دومه دو هستی آن را به وجود نیاورده است. و این تنها جوابی بود که توانستم به خود بدهم چون علت تامه لحظه دومه دو هستی وجود نداشته است. حال دیگر برایم روشن شد که چه می خواهید تو می خواهی بگویی اولین پدیده ای که علت الل آن را به وجود آورده وجود نداشته است. عدم آن پدیده به این معنی است که علت تامش آن را به وجود نیاورده بود اینکه علت تامش آن را به وجود نیاورده بود فقط یک معنی دارد و آن این است که علت تش ازلی نبوده است یعنی علت تامه نیز مسبوخ به قدم بوده است. بنابراین علت الالل اگر قرار باشد ازلی بوده باشد باید که علت تامه هیچ پدیده ای نبوده باشد. و برای اینکه علت تامه هیچ پدیده ای نبوده باشد پس باید که حدود و مختصات و کیفیات مشخص نداشته باشد چرا که حدود و مختصات و کیفیات یک هستی از آن هستی علت تامهی برای یک پدیده واحد و مشخص می سازد. پس علت الال یا واجب الوجود اصلا نمی تواند حائز حدود و مختصات باشد مومن بله دقیقا همینها را میخواستم بگویم ناباور فکر میکنم که دیگر برهان الیت تمام شده است اینطور نیست مومن بله کلیت برهان الیت همین بود حالا بگو ببینم نظرت چیست آیا هنوز هم میتوان منکر خدا شد آیا هنوز هم شرافت مرازیر سوال سؤال میبری حالا دیگر اجازه میدهی به تعلیم درس دینی ادامه دهم ناباور تند نرو تا اینجا فقط وجود یک واجب الوجود را ثابت کردیم هنوز مراحل زیادی مانده اثبات حقانیت یک دین با اثبات وجود یک علت العلل به دست نمی آید. ظاهرا دین های زیادی هستند که می توانند ادعا کنند خدایشان همان علت العلل برهان علیت است می خواهم به همه آنچه تاکنون گفته ای فکر کنم مؤمن بسیار خوب پس تا هفته بعد گرامیان همینجا در صفحه 89 فایل آوایی هشتم از کتاب برهان علیت به پایان میرسه تا درودی دیگر بدرود.